جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد و هیچ کس نشانی زندل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا اونشان ندارد هر شب نمی در این ره صد بهر آتشین است دردا که این معماشره و بیان ندارد سرمنزل فراغت نتوان زده از دادن ای ساروان فروکش که این کران ندارد چنگ خمید قامت می خاندت به اشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مستست و در حقه او کس این گمان ندارد احوال گنج قارون که یام داد برباد در گوش دل فروخان تا زرنه نهان ندارد گر خود رقیب شم است اسرار از او بفوشن کان شوخ سربریده بند زبان ندارد کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد